اللهم صل على فاطمة وأبيها وبالها وبنيها والسر المستودع فيها لعدد ما أحاطى به علمك اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم مبایسه طب المعصومین صفحه 163 وسط صفحه روایاتی که امروز میخونیم از وصول گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله علی و سلم و رسول الله اکرم فرمودن اداء سلاسان و دووا او بیماری که کلی هست فراگیره و بیماری های دیگر از او ناشی می شود سه چیز است و داروی کلی به صورت درمان کلی که زیر مجموعه های گوناگون دارد، آن هم سنو است شابخونه نوشته المرتو این به اصطلاح عربی متداوله مره سیادی صفره و کاهش پومپاج مایع صفره بیست نعشه به اسطلاح عربی متداول محاوره الحوار یعنی گفتگو داییلوک اما اصطلاح عربی افسح باید با کسره بخونی المروت و زیادی مایات از باب تجمع مایات اضافی بدن یا بحث خلطا و امانندو با تو بحث تخصصی گوارش در طب جدید مکوس مکوس اینه میگن بلغم و ازدیاد خون به ازدیاد سلولای خونی یا بدکاری و کمکاری تحال یا کبه حالا فدوا و دمه لف و غیر مرتبه لف غیر مرتبه محوش اول اومده توضیح آخری داد. فدوا و دمه الحجامتو داروی خون آلوده مثلا سلولای مورد خونی زیاده مثلا قلزت خونش بالاست مثلا گردش خونش ضعیفه مثلا تسالوب شرایین داره فدوا ادمه الحجامه حجامت به نوع تبع حجامت خشکم ده و دوا المروات النشیو یا الماشی گرچه متفاهم عرف عام این رو باید با تشدید بخونی یعنی کارکن ملین مسهل داروی مره داروی زیادی صفرا و اثرات وضعی سوء صفرا که خبلی میاره نارسایه ذهنی میاره باید کارکن بدی به مریض مسهل بدی ملین بدی تا ذریب سم بدنش بالا نباشه و مندگاری فضولات در رکتوم یا راستوده مریض زیاد نباشه چون خط قدیم خط کوفی بوده و خط کوفی حرکات ساده یا حرکات صدادا یا تشدید یا سکون یا نقطه نداشته لذا ما اینجا میتونیم بدون تشدید بخونیم المشی میتونیم با تشدید بخونیم المشی حربش هم درسته. ماشیش یعنی چی؟ کسی که پرخور باشه، کم تحرک باشه، غذای چرب زیاد بخوره. یا اگر خانم باشه، تعریق زیاد داشته باشه، آب کم بخوره. و همچنین قرص ضد حاملگی بخوره. اینها لجن سفراوی میاره و سنگ های پیگمانته‌ای قهوه‌ای صفرا میاره. خب اینجا مایات خوردن مثل آب و آب جوش و همچنین راه رفتن بسیار خوبه در درمان همین مره اگر لجن صفراوی شدید باشه و سنگ صفرا داشته باشه اینجا میتونه محلول تمرهندی بی محلول در آب بخورن صفراش رو رقیق میکنه و اگر سنگ صفرا داشت میتونه جوشنده هسته خورما بخوره پس ببینیم مشیم میشه خون. گرچه <متصفيق> در قالب کتب اینها با تشدید خوندم و بعضی از علمای صالح معاصر ما مثل آیت الله شیخ عباس تبریزیان با تشدید میخوان و دواعل مرته یا یعنی کارکن ملیم مسهد و دواعل بلغمه الحمام سوائد پوستی آلودگی های پوستی به نوع سلولای مرزیه سطح پوس یا گرد خاک یا دوده یا املاحی که از عرق آمده به بیرون از سطح بدن و بعضی سمومی که به توسط عرق دف شده اینجا اگر هر روز بره هموم بدنش لاغر میشه هزال یعنی لاغری مفلط میاره شخص شب کبریتی میشه اما اگر یک روز در میون بره هموم به شستشو خودشو بده فربهی میاره اسمین میشه یعنی چاقی عادی میاره که بیماری هم نیست در زمین بلغمش هم چی شد؟ کم شد مخصوصا سنین چل سال به بالا و دواؤل بلغم الحمام تو بحث خوراکیه و غیر از استحمام اصل رقیق شده صبحگاهی و عبسی به شامگاهی سبب میشه که خلط اضافی خلط چسبنده و همچنین های ناحیه صدری فوقانی توریه ها اینا همه عربه داره. دیگه این صفحه های خلطی مکرر نداشته باشه این روایت مومن ها سه سند داره یکیشو در کتاب دکتر لبیر بیضون این دانشمندشیه آورده مکارم الاخلاق اخلاق صفحه دو دو سند دیگر هم داره بحار علامه مجلسی چاپ بیروتی جدید جلد پنجه و نه، صفحه سد و حدیث هشتاد و هفت، مستدر کل وسائل، من محدث نوری، جلد سیزده، صفحه هشتاد و پنج، حدیث چارده هزار و و و روایت بعدی ام رسول الله نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن اللهم صلی علی محمد و علی محمد حاج فرج احق ان الذی خلق الادواء جعل عددها دواءا تحقیقا آن چنان خدایی که احد لا شریک له سرمدیه که قادر علی کل شیء خالق کل شیء رب الارباب چنین خدایی خلق کرده ادوا را جم کسر دار بیماری های گوناگون به خاطر عوارض گوناگون و عامل های گوناگونی که در طبیعت هست جعل لها دواء برای هر یک از این دردها دارویی خلق کرده و در دامن طبیعت گذاشته و ان خیر الدواء الحجامت و الفصاد و الحبت و تحقيقا یعنی شونیزه تحقیقا بهترین داروهای عملی و طبیعی یک حجامت اقسام حجامت اینا دیگه بحثشو میتونید کتابه حجامت از دیدگاه اسلام و علم روز مال محقق توانا حضرت آقای خیر اندیش رو مطالعه کنید به زبان فارسی میتونید کتاب ارزشمند دراستون فی طب رسول المصففا مال آیت الله شیخ عباس تبریزیان جلد دو یک سوم آخر کتاب تا آخر بحث حجامت و فست و زمانش و کیفیتش و اقسامش و همین رو نگاه کنیم مومنان خیلی کتاب تحقیقی خوبیه به زبان عربی و این خیر الدوائم الحجامت و الفصاد و دوبون فست یعنی رکزدن وریدی از وریدهای سطحی در بعضی بیماری خاص از ورید عمقی هم میشه که باید پیش متخصص فست یا حجامت بریم سوم والحبۃ السوداء اینجا چابخونه اشتباه کرده یه واو اضافی داشت بنا بر هر سه نسخه ای که این روایت داره اینجا واو نداره والحبۃ السوداء نه اینکه بلحبه و, و سودا بخونیا که بگی حبه یعنی دانه سپس یا قرطم یا بطن اون تو بحث شوشه شویی سنگای کلی است دانه سقس یا صنق سقس این بابش قلطه اینجا چاکونه اشتباه کرد. و الحبت و یعنی سیاه دونه یعنی شونیزه بنابر هر سه نسخه هم یعنی شونیزه هم اومده اون کلمه جعل لها دوان فقط بنابر نسخه دعائم الاسلام خلقه داره خلقه لها دوان بنابر نسخه دعائم الاسلام خلق لها دواءا خدا خلق کرده برای تک تک بیماری ها داروی طبیعی را اما بنا بر دو نسخه دیگه جعله داره حالا سه تا نسخه کنید یکیش تو کتاب اومده بنا بر چاپ اسلامی تهران بهار جلد دو صفحه هفتاد سه اما بنابر چاپ بیروتی جدید بهار جلد 59 صفحه 720 حدیث سی دو سند دیگر یکی مستدرک محدث نوری جلد 16، صفحه 437 یکی هم کتاب دعای مل اسلام جلد دو صفحه 100 و چهار یه نقطه‌ای که اینجا لازمه زد کنم در دارو و درمان پزشکی اسلامی و تبل المعصومین بیماری رو تشخیص میدیم با کمترین هزینه در کمترین زمان با داروهای طبیعی درمان میکنه اما این دارو که میخواد مریض بخوره قبل از اینکه بخوره بسم الله بگه و این روایات داریم اینکه در هر خوراکی و آشامیدنی اولش بسم الله بگو آخرشم هم الحمدلله بگو اون سرجاش درستان و دو مستحب یا اول هر لقمه که برمیداری داری بسم الله بگو قشنگ جویدی قورتش دادی الحمدلله بگو اونم دو تا مستحب دیگه اصلا تو بحث دارو و درمان ما روایات داریم مؤمنا با چهار سند یادداشت بفرماییم امام صادق علیه الصلاة و سلام میفرماید برای مصرف دارو بسم الله بگو و سپس دارو را بنوش یا میل کن سنداش را حاشیه زردمؤمنا و حاشی زلم وسائل شیعه چاپ آل البیت جلد 25 صفحه سه حدیث نه خط تیره سی و یک هزار و, و, چهل و چار. کتاب هدایت الامه جلد یک صفحه دیویست و بیست و پنج. حدیث چهل و دو بحار علامه مجلسی جلد پنجه و نه صفحه شست و شیش. حدیث ده طب اعمه عليهم الصلاة والسلام و السلام علامه شبر صاحب تفسیر شبر صفحه 57 پس پزشکی اسلامی ولائی یعنی تبل المحصومین در مصرف دارو هم یه سری قیود خاصی دارد که به نفع جامعه بشریه دارو رو باید با توجه خورد، نه قافلانه جاهلانه حالا مؤمنا واقعی برای این مطالب گفتیم خدا برای هر دردی داروی قرار داده مثلا اگر مریضی آمد و این پنج بیماری را دارد پنج بیماری چجور درمان کنیم نه ها که جواب دادم مریض آمده بیماریه آلاجیل آلاجیل دارد یعنی بیماری گرفتگی مجرای صفرا دارد و همچنین مجرای سفرای او جنتیکا به صورت کم تشکیل شده اگر مریض دچار کیسه صفرای کوچک و همچنین هیپوپلازی می باشد اگر چنین مریضی ورم کبد و ورم تحال دارد یعنی این دونو نفریت دارد همچنین کمخونی دارد همچنین زردی شدید دارد همچنین خون در ادرارشه همچنین کلیه راستش بزرگ و ورم کرده و کیست هم دارد کیست کلیه هم در کلیه چپش چند تا کیست کلیه دارم، یعنی بیماری ام به صورت انگلیسی بنیسی مسکا حالا چنین مریض چی باید درمان کنین قابل عرض دکترای داخل خارج کشور جارو نداریم اما از دامن طبیعت اینهایی که مصرف کنه همه این توضیحاتی که دادم ها خوب میشه جواب یکی هم مریض است. یاد داشت بفهمه. مثلا برای سندروم آلرژیکش محلول آب سرکه طبیعی سیب مثلا برای هماچوری هماچوری یعنی مشاهده خون در ادرارش برای درمانش تو جیره غذاییش خربوزه بعد از غذا لیمو شیرین به همراه شام یا بعد از شام کاهو بدون سنس به همراه نهار و شامش بیماری هماچوری یا مشاهده خون در ادرارش هم خوب میشه اگر کسی کم خونی دارد و از پنجاب و دو روز بعد از به دنیا آمدنش زردی شدید هم گرفته است ورم کبد و تحال دارد اینجا مصرف سه شیره شیره خورما شیره انگور شیره توت روزی یکی دو قاشق پلو خوری سو باشد. و همچنین مصرف سیاه یک قاشق مربو خوری تو بحث ورن و همچنین خولنجان یا قولنجان تو بحث ورن و تو بحث بزرگی کبد و همچنین بزرگی تا حالش گیاه و برگ دارواش از رسته گیاه شیرینک درمان اینکه کلیه چپش چند کیست داشت ام اسکا بود و کلیه راستش بزرگ بود و داشت و کیست میتونه گل استخو دوست صبح ناشتا یک قاشق چایخوری به همراه عسل استخو دوست بخوره و اول مغرب یک قاشق چایخوری پودر افتیمون بخوره به همراه عسل استخو و همچنین شب قبل از خوابش یا یک ساعت به خوابش مونده پودر شیرینک یا پودر دارواش یک قاشق چایخوری به همراه عسل استخو دوست بخوره هم کیستش هم تومورش و هم تجمع مایات اضافی بافتیش خشک میشه و اگر احتمال سلول های سرطانی بود یا تومورهای های خشکیم یا بدخیم بود با همین شیرینک و با همین دارواش پیشرفت سلول های سرطانی رو جلوشه میگیریم لازم نیست که به این آخرین دستور رو انجام بدی. که آخر و دواء الکی آخرین دارو سوزاندن و داغ کردنه حالان سری مثلا با لیزر می سزونن. ما سوزاندن و کی رو آخرین داروونه تو طب اسلامی و طب معصومین نه اولین دارو گرفتین مومنه چی شد؟ اینم تا اینجا برای اون کیسه صفراش که کوچک بود و یا هیپوپلازی که داشت وسط روز کاسنی میخوره هفت برگ یا یک استکان عرق کاسنی میخوره بدون اوسانس و عسرانه تمر هندی می‌خوره، یک قاشق پلوخوری به همراه یک لیوان آب یا اینکه هفت خوش تمرهندی بینمک در یک لیوان آب مخلوط میکنه هم میزنه و میخوره اینم تا اینجا هفت چیز برای این بیمار zarar داره با این خصوصیات ویژه‌ای که داشت حالتای اورژانسی بود که قندای شیمیایی و اسانسای شیمیایی و ترانس چربی بالا و کافئین زیاد و فاست فودها کنسروها کامپیوتر یک شخص دیگر اینم تذکر میدم چون مطلبه جامعه و دکترای محترم داخل و خارج کشور در زمینه کلینیک و تو بحثای آزمایشگاهی هستن و هنوز درمان واقعی براشون حاصل نشده در زمینه این بیماری مثلا بیماری تم تم فیگوس تم فیگوس یعنی بیماری که خودفعالی سیستم دفاعی بدن داره تاولهای پوستی روی زبان، دهان، حلق و سپس تمام بدن بیمار رو فرا گرفته حالا بیمار هستن که اسمشون هم و شما تلفن هم دادن حالا کار نداریم مثلا بیمارستان رازی شهر تهران خیابان وحدت اسلامی از حدود سال 1380 هجری شمسی درمانگاه مخصوص پنفیگوس با حدود 100 نفر بیمار آغاز کرده و اکنون قریب هزار نفر پرونده دارد. افراد مختلفی خدمت می کنن از جمله خانوم دکتر پروفسور شمس اما درمان قطعی در داخل و خارج کشور برای این نوع بیماری پیدا نشده بله دارو تجویز میکنن مثلا از داروی شیمیایی قرص کرتون 70 میلی به مدت دو هفته تا یک ماه میگن به مریض بخوره که این تاولهاش کم بشه درمان گیاهی چون بحثمون بحث گیایی ها استخدوس رو صبح زود میخوره افتیمون رو اول مغرب میخوره کاهو بدون سس با نهار شام میخوره انار شیرین یا روبه انار شیرین رو با گلنار وحشی که گل و قنچه های درخت انار وحشیه که میوه نمیده فقط قنچه و گل میده این یک لیوان آب انار شیرین یا یک قاشق پلوخوری را رو به انار شیرین رو با هفت عدد گلنار وحشی اصلا نمیخورد. مریض دیگر ناراحتی مغزا اعصاب دارد. ارتباطات ذهنیش چهار خدشت شده. همیشه دلمشغولی دارد. دوچاره نسیان و فراموشی هم شده و برداشت اطلاعاتش از حافظه موقت کن شده همچنین اختلال در برداشت اطلاعات هم داره پزشکی جدید در روانشناسی بالینی اعصاب روان داروی مشخصی برای چنین بیمار با چنین خصوصیاتی نداره حالا داروشی یاد داشت بفرمین دعاشو به جون امام رضا علیه السلام و دعاشو به جون امام صادق علیه السلام کنیم امام رضا علیه السلام در کتاب طب یا رساله ذهبیه فرموده احلیجات در اصل پربرانده شود. چون اینجا زعفه اصابم دوش مؤمنان اینجا اصلشو آویشن نعنا گذاشتیم احلیجات در اصل پرورانده شد اهلیجات حلیله سیاه حلیله زرد حلیله کابلی، گرچه حلیله کبیر و حلیله چینی هم داریم. ولی قطع متیقن جمع ارفی ستاس. پس حلیله سیاه حلیله زرد حلیده کابولی به نسبت مساوی مثلا از هر کدوم ده گرم اینها رو پود میکنیم در یک کیلو اصل آویشن نعنا خوب هم میزنیم میزنیم تو سایه باشه هر روز این مریض صبح قبل از کار یه قشو مرب بخوری از این مخلوط در اصل میخوره داروی دوم اول مغرب یا اول شب میتونه بخورن سنا مکی سنا مکی به اضافه سود هندی به اضافه فلفل سفید که همون فلفل سیاهیه که پوسش کنده شده مغزش سفید به اضافه زعفران که زعفران مرقوبه به اسطلاح بازاریات دختر پیچ که سر زعفران به اضافه کندور خراطی مرغوب اللبان زکر کندور خوراکی مرغوب این پنج تا رو مؤمنا به نسبت مساوی مثلا 5 گرم 5 گرم 5 پنج رو پود میکنید مخلوط در یک کیلو عسل آبشنبنانه میکنید حالا هر روز این مریض مؤمنا یا اول شب یا هر شب یک قاشق چای خوری از این مخلوط میخوره تا هفت روز حد درگر تا چهارده روز حد اکثر بیشتر از چهارده روز دیگه نخوره به قدری حافظش قوی میشه و برداشت اطلاعات از حافظه موقعت و اصلیش قوی میشه که اگر کسی نشناستشان میگه این ساحره. شما ما هر مطلب علمی سوال میکنیم ما سری جواب میتونیم جوابش هم درسته ها ها چرت پرت چرت پرد بگه اینم دعاشو به جون امام صادق و امام رضا علیه السلام کنیم چند سند داره اینها رو تو تبل تب معصومی بحث نسیان توضیح داده دارم همهش مثال میزنم اما که برای هر درد و بیماری دارو هست و میتونی از دامن طبیعت استفاده کن. اگر مریضی آمد پمپاژ قلبش پمپاژ خون قلبش ضعیفه. مثلا 20 درصده این سکار رو انجام بدید برای تقویت قلب و تقویت پمپاژ خون از قلب به همه اعضا و دستگاه و رگهای بدن یک به یا آب میوه به یا آب به یا مربای به صبح بخورد. دعاشو به جون امیر المومنین علیه علیه السلام کن اكل و سفر جله یقوی قلب وعیف خوردن میوه به یا آب به یا مربای به تقویت میکنه قلب ضعیف رو دوم وسط روز آب مخلوط مخلوط با عسل بخوره در درمان ضعف قلب و دلمال شک شخص وذعف عموميه بدن سوم شب قبل از خواب جوشانده پنج برگ کلم پیچ به همراه سه لیوان آب تا برسد این جوشش به یک لیوان آب کلم صد که شد یک قاشق پلوخوری عسل گرم آویشن نعنا در آن مخلوط کنه و بخوره اینم در درمان اختلالات دریچهای قلب <تصفيق> اگر کسی ورم داشت یا نفریت تحال یا کبد داشت چه کار کنیم جاروش یکی سیاه دونه است که قبلنا گفتیم از فرمایشات گوهربار امام صادق علیه السلام که ضد اورام دوم تو بحث تبه مکمل تبه گیاهی آلترناتیب تبه سنتی اینجا تاجریزی سیاه یعنی این نباد صلب ای نباد صلب با سه ساخه. این نباد صلب تاجریزی سیاه. این زد درد زد درد های سرطانی زد ورم زد ورم پرده مغزه مننج پرده مننج. زد ورم های سرطانی، زد درد روماتیسمیه زد درد های مبسیه، تتسکین سر حتی زد سودا و سردرد های سودایی هم بفرمو دیلیم مؤمنان اگر درد و بیماری هم باشه داروش در دامن طبیعت هست محققین و فجوشگران باید تحقیق کنن نگذارید قرب و شق تو تحقیقات دارویی از شما مسلمانان جلو بزنم و مشتی آتاشقالای شیمیشون و شیمی درمانیشون رو شما بدم که الان در اروپای غربی مصرف هشتاد درصد داروهاشون داروهای گیاهی و داروهای هومیوپاتیه که هفتاد هشتاد درصدش منشأ گیاهی و 20 30 درصدش منشأ املاح معدنی داره بیست درصد مصرف دارو در اروپای غربی داروهای شیمیایی. درست برعکسش تو کشور ما کشور ایران هشتاد درصد مصرف داروها شیمیایی ولی بیست درصدش گیاهی هم خودمون خودمونو قرب و شرق داره عمل میکنن. اخ مسلمانان از شیع و تو این این رو به کشورهای بلوک قرب و غیر قرب فلعی می و دونا قرصای گیاهی درست میکنن و به چند برابر قیمت به کشورهای اسلامی می فروشن. تو بحث گیاه و بحث شناخت گیاه کشف گیاه و درمان با گیاه و میوه‌جات که بهترین داروه کمترین اثر سمی رو در بدن به جا میگذاره گاهی اصلا بدون سمه یکی دیگه از سوال‌هایی که بعضی کردم بیشتر خانوما بودن بیماری نارو نارو فیبروم بیماری نار و فیبروم که علامتش اینه اول لکهای های قهوهی ریز دروش سپس دانه های گوشتی بر روی پوست میزنه که درد ندارد ولی آنهایی که روی عصب دونه میزنه مناطقی که روی عصب دونه زده بسیار دردناکه درد داره و کم کم کل بدن رو فرا میگیره درمانش چیه؟ گل استخد هر روز یک قاشق چای خوری در نصف استکان آبجوش جوش بلهم صبحا و روز یک لیوان آب انار شیرین با گلنار وحشی هفت عدد یا یک قاشق پلو خوری رب انار شیرین با هفت عدد گلنار وحشی اول مغرب افتیمون یک قاشق چای خوری در نصف استکان آب جوش بلهم. به همراه ناهار و شام کاهو و کرفس برگه زردالو وسط روز یا عصرانه یه ماش کشته یا برگه زردالو باشه کم کم بخوره اونایی که طبیعی خوش شده نه با تیزاب تیزاب ناراحتی معده میاره هویج زرد که زردکه الجزرو بسیار خوبه در درمان ناروفیبرون صبحانه شیر اثر شام سوپ جو جعفری با زردک جعفری و زردک تو سوپ جوش باش به اضافه آبگوره یا سرکه طبیعی سیب به اضافه روغن زیتون که قاطی این شامش باشه اگر کسی بیماری تومور مغزی دارد مثلا تومور ناحیه چپ مغز تی ام دو نیم در دو در یک این یک بیمار بود همچنین هموراژی دارد خونریزی از رگ ها که ممکنه به علت پارگی رگ یا مویرگ یا ورید باشد همچنین حالت قسمت پاریتال یعنی استخوان بال بزرگ در دو طرف سر نمیگن پاریتال استخوان استخان بزرگ چپ که به جدار یا دیواره مربوط به استخان آهیانه باهه دو چشم جدار یا دیواره مربوط به استخان آهیانه که در طرف چپ و راست جمجمه است فرهنگ دکتر محمد صادق روشان از اسرتید معظم شیعه در دانشگاه تهران سرحنگ روچان صفحه 163 تو بحث پاریتال بحث آناتومی و فیزیولوژی که آمریکایی‌ها نوشتن 14 جلد تو جلد اول به لحجه انگلیسی بیکتال هم نوشته جلد یک صفحه 3 حالا اگر کسی در قسمت پاریتال که نشون دادم بوده هم هموراجی داره هم تومور مغزی داره و تومور ناهی چپ مغزش هم از حیث حجم و وزن و طول از عرض دو و نیم زب در دو زب در یک تی امش حالا اینجا چیکار کنیم؟ قضای شبش آش جو با سبوس آش جو با سبوس با سرکه طبیعی انگور اسکری یا سیب باشه چهار نوع آب هم باید بخوره آب خیار بوته ای، آب برگهای کاسنی آب کاهو آب کرفس خام هر شیش ساعت یه استکان شیش صبح آب خیار دوازه ظهر، آب کاسنی شیش بعد از ظهر آب کاهو دوازه شب آب کرفس صبحانه شیر تازه گاب کمچرب با یک قاشق پلوخوری اصل استخدوست روغن زیتون باید باشه تمام روغنها رو با جیر قضایش حسق بهترینش ایش لبنانیه بعد رودباری، بعد ترکیه داروی طبیعی گیاهی چیه باز همونایی که گفتم به اضافه سه چیز دیگر چون هم خونریزی هموراجی داشت و هم تومور ناحیه چف از تو بحث تومورش جاروی طبیعی گیاهیش گل استخدوس صبح افتیمون مغرب شیرینکه که دارواشه شب قبل خواب و همون توضیحاتی که قبل دادن اما بعضی چیزای دیگه هم هست ضد سرطان مثل گل شکاعی گل شکاعی اطلاف مشد پره اباسد خاجه مراد اینا خدرود همین ودشکاعی چند تا اسم دیگه داره خارزن بابا هم میگن چرخله هم میگن چرخه هم میگن در قسمت آذربایجان میگن بقنق هر دوش با قاف بنویس کنگر خرم میگن کنگر خر چند قصر کنگر داریم حتی بعضی از اقسام کنگرها در درمان کبد چرب مفیده که الان جمهوری اسلامی ایران قرص زده کبد چرب رو از همین کنگر زده و بعضی دارو خونهای مشهدم در قسمت سراه جم بعد از بیمارستان امام رضا دارند حالا مراجعه کنید به اون کاغذهایی که در کبد چرب نوشتم انشاءالله یه روز میگم یکی دیگه از چیزهایی که خوبه برای این بیمار شخص این بیماری شخص حویج زرده یکی دیگه شلغم و همچنین گل همیشه بهار چرا؟ شاید خون ریزی های او فقط ناشی از پارگی مویرگ نباشه که بحث هموراجیه نه شاید سلولای خونش حالت سرطانی شده و هفت نوع سرطان خون تو بحث اونکولاجی حالا در درمان سرطان خون چیکار کنیم؟ دو چیز داروشه لیکن سلجم، الفت، شلغم روزی 100 الی کردم. دوم دسته کالاندولا یعنی گل همیشه بهار. میتونید به کتاب‌های متخصصین داروساز از دانشگاه تهران و دانشگاه اصفهان درمان با گیاه. همچنین کتاب گلچین جامع از گیاهان دارویی و عطاری ایران دکتر مرتزا صفایی دکتر فررخصه مراجعه کنیم اونجا هم حواشی ما زدیم در کتاب این اساتید دانشگاه مومن ها ها بخواد میتونه عکس بگیره اینها رو او داشته باشه جلوی پیشرفت های اینها رو هم میشه گرفت این هم سؤال شخص دیگه اللهم انسان عالم محمد عالم محمد معجل فرجه